نیک فرجامی به وقت کودکی میدانستم هر پروانه ای را که از مگر رهایی بخشم، هر حلزی را و هر انکبوتی را و هر سپیت پری ای را، هر خ گوشخرکی را و هر کرم بارانی را میآید و می گرید به بهگاه خاک سپاری من. ان که را یک بار از مگره رهایی بخشم بار دیگر که نمی میرد همگی میآیند، تا خواب کنند به میان سالی در یافتم چه فکر عبسی هیچ کس نیست نخواهد آمد همگی پیش از من میمیرند اکنون که دوره پیری رسیده است میپرسم اما اگر همه را از مرگ رهایی بخشم میشود تا دوسته هاشان باشند و بیایند نیک فرجامی از ریشفرید از دفتر شعر سیب و سرباز، های فراسلی وحشت، فازافرینی خسر و ناقد، مجموعه شعر جهان شماره 25 انتشارات مروارید.